مدیر آمیل با اصحاب رسانه نشست رو روز دولت حواسون فرق هم که با ارواح مصاحبه میکنه و مصاحبه شو انجام داده و خودش شعلا گزارش هم آماده است احتمالا. تا شما جلسه تا اون داره گزارش تنظیم میکنه شما جلسه تون تا اون بشه هنوز کار نکرده اون میزنه گفتیارتون راحت که شما است. نکرد گف چیا؟ پای میکروفون، پای میکروفون اگه که هاست سربروی؟ بیاره, بیاره. بیاره, بیاره. بیاره لوگو بیاری، هر که بری که. پای میکروفون اگه که ها بیار. تو سه دانشگاه مامکنی بیاریش کننده. لوگو آرشیگیستر بیاری. مار نبودست اما ما مال مدالی ما... ما ما داشتیم. تو دعوت بیته. بسم ملله الرحمن الرحیم، با کسب پیز با کسب اجازه از محضره. امروز محترم سازمان خیر مقدام ارزش مکان خدمت بزرگواران امروز رو میزبانی گروه دیگه میزبان شما این و برنامه روزنی ها شما انجام دادند من فقط عرض سلام و خداقوبت و خسته نباشید در خدمت شما خانون در عصدی هم که روز رو دعوت بودند من تبریک عرض میکنم ولی ایشون که هم رو داشتند ما در خدمت نای هستیم و برنامه ها رو بیش برنامه <تصفيق> من چیز بسم الله دیگه شما. بسم الله الرحمن الرحیم خیر خوش این که اینجا هستیم از خبری گزارش اعمال یک سال نوود یک سال نوود و شش ماه نوود هشت هست چیز ماه نگذاشته امدتاً اگر سوالی هم در خصوص عمرکت مالی، گزار شفاف مالی داری، توزای مالی، اونا پاسخو هستن دکتر، مناطق آزاد، جوای شیشهی شدن و در واقع توزای مالی، بوجهی، سرمایه گزاران، جزیات سرمایه گزاری ها، هم سالی دارید، پاسخو خواهند بود خیلی چکر من بگم؟ من بگم؟ سوال بخوصی؟ آره، من شما حتما یه سآلهای فضای کلی سآلات, سآلات تونه باپرسید برای من سرجم همه رو با هم جواب بدم، اینجوری بهتر نیست؟ زمان بهتر مدیریت میشه اولا که ما گزارش هم کرده دیگه مکتوب برد. کردیم اینو دارید نستن. شما همه شو ما داره این با صند هست فایل رو به شما این هر... ندادید به نه چون تمام نسخه بار بوده ولی ما فایل الکترونیکش کامل با این فایلو, بدید. فایلو بدید که دوستان داشته راحتی میتونه آره برق بزنن فایلش آره. رو فلش به دوستان بدید بله از شروع بله، سپاسگزارم. سلام و ادب دارم خدمت شما، ممنون تشکر می‌کنم از خاطر. لطفاً مربوطه بله، هر سوال دارید. اول بگویید کدوم خبر جهان جهان اقتصاد، روزنامه جهان اقتصاد. بله. در فقط بعضی از طرح‌های تولیدی منطقه آزاد ما بهش خورده ذهن مثل پردارش شترمرغ و پردارش تمساح <تصفح> <تصفح> که از تسهیلات روستایی روستای آبکان استفاده شده. من اصلا بگم که حالا با توجه به از این تسهیلات استفاده شده ما شاهد هیچ گونه کار عمرانی یا بهسازی در وضعیت روستا نبودیم. خاطر در مورد این با توجه به مسئولیت اجتماعی منطقه توضیح و با توجه به اختیاری که در تاریخ پنج استاندار محترم سیستان و بلوچستان به مدرامه منطقه آزاد در خصوص باگزاری اختیارات استانداری به منطقه میخواستم ببینم برنامه های منطقه آزاد در توسعه وستای تیز چی هست و ارتباطش با شورای اسلامی روستا و دهیاری به چه صورت خواهد بود و یه سوال هم که دارم در مورد از های منطقه آزاد چابهار گردشگری خرید هست و متأسفانه با توجه به قیمت هایی که الان وجود داره این جاذبه قالب داره از بین میره تو چابه ها میخواستم شما چه برنامه هایی داریم همون مهر. و با دشتیاری السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زمین عرضه سماما و حسن عاشید تشکل می کنم باید تداوته ستا سوال مطرح کردم بحث اول فرودگاه هستش که یکی از دیرساط های مهم در شهر سان و خصوص در منطقه آزاد متاسفانه چندی سال هست که فقط رو حرف یعنی اجرایی نشده بحث دوم جاده فرودگاه جاده فرودگاه به منطقه آزاد هستش که یکی از مسیرهای مهم، در واقع هم پتروشینی فولاد، خود منطقه آزاد شهرستان چابهار کلا در این مسیر روزانه شاید هم وزیران اومدن خود شخص رییسیونو اومده ور شخص از که در این مسیر تردد میکنه که یکی از جاده های پرترافی هستش بخصیصیم هم در مورد در مورد روستای تیس هستش که چندین سال در واقع مشکلات اساسی که مردم تیس دارن دولت توپ به زمین منطقه آزد و منطقه آزاد هم دوباره بونیاد مسکر رو در واقع درگیر بایدی بونیاد مسکر رو منطقه هست و مردم همین مشکلاتی در پروژه زیرساختهی قلعه روستیس است. مشخصه. عالیه، می هندوست. می هندوست راست. بله. عرض سلام، خسته نباشید. من چند تا سوال دارم در مورد پروژه عمرانی مجموعه گردشگری لیوار به توزیاتی بفرمایید و مجموعه گردشگری کریکت وضفه برنامه منطقه آزاد و دوسته مادوده منطقه آزاد در چه مرلی استش و مادوده و اون که مشخص می‌کنه در کدوم مادوده رو دربر می‌گیره؟ سوال بعدی در حمل و نقل عمومی شاره و منطقه آزاد هستش که در باس اوتوگوسه‌ها و تاکسی ها خیلی مشکلات فرامادی دیده میشه وضعیت منطقه هزت خزلازه تاکسی, تاکسی دارید از شر خیلی بهتره و یا برنامه و توسعه دارید که مثلا امرو نقل عمومی در سطح منطقه در شان و شخصیت منطقه و مردم باشه مثلا در مورد واردات تاکسی ها و ماشین هایی که حمل نقل عمومی در داخل هستن سوال بعدی من در مورد سمانه هستش که در سطح شهر چاوار فعاله میکنم آیا میتوان سمانی را در سطح منطقه هم ثبت کرد؟ سوال بعدی من در مورد مجوزهای گردشگری و سطح شرکت های گردشگری همون مجوز بنده به هستش مثلا الان شرکت های گردشگری یا تولیسی در سطح منطقه هم سبت شده یعنی کود سبت دارند شمال ثبتم دارن، ولی فقط در سطح مادونه منطقه ازال اعتبار دارم و خارج از در سرزمین اصلی فاقد اعتبار هستند آیا میشه برنامه ریختگاه مثلا مجاوزی که واسه برگزاری تور یا تورگردانی این شرکت ها مثلا در سرزمین اصلی هم اعتبار داشته باشد سپسگوزارم بسم الله را هماره امید بلیچ هستم آنامه آتف جوان و بایگا با اطلاع استانی آتف سیستان و دولت رو به دولت مردان تبریک ارز بکنیم اینکه که در این عفته دولت غیر و برکاتی که شاهدش هستیم پیشرفتش رو چه زودتر و اون دوستم دست آورد دو به نتیجه رو هر چه سریعتر ببینیم در مورد بحث شفافیت هستش که شفافیت مورد استایی داشتیم که میگفت شفافیت تعریفی که ما تو ذمونداری میرانیم یا مخصوصا او تعریف رو نمیده شفافیت وقتی ما آببد بانکمونم مون دستگاه های آبل بانک مدنظر مد... مد بگیریم، مثال بزنیم این دستگاه خود برداز یا اون بانک ها کار رو که وارد میکنیم بعد یه سری درخواست ها میکنه که کاربر باید اونا رو انجام بده تا به نتیجه برسه مثلا همین لطفا سبب کنید لطفاً صبر کنید به درد کاربر نمیخوره اگه یعنی ما بخوایم که این شفافیت ح داره شفافیت میکنه این نیست. یعنی کاربر کارت میزنه نتیجهش همونی که پول رو از دستگاه بگیره. همین چیز همین رو مک نظرشه. حالا بگیم که لطفاً صبر کن دستگاه از صندوق شماره یک داره پولارو رو میشره درات تموم شده از پمیا داره میشماره، این شفافیت نیست در واقع، یعنی یک هم در رفت زمان هست بعد به قول دوستان تو بعض شفافیت نباید چیز از صفرش، از ریالش، اقداداش، ارخامش همین چیز مشخص شده باشه <تصفيق> شفافیت این او نتیجه اون گاری که شروع شده و نتیجهش چی شده و ریز و جزیات هم به قول دوستان دستگاهی که نباید این کارها رو انجام بده و به قول دوستان اطلاف زمان نداشته باشه بعد سالاتی که از خدمت جناب دکتر داشتیم که بحث آیورا بود، حمایش آیورا که برگزار شد تو چاوار همه مردم منتظر بودن یه اتفاق خاص بیفته تو چاوار همه منتظر بودن، همه منتظر بودن یه اتفاق خاص بیفته ولی اندوزم از خارجیا، ها دوستان ما نمی بینه فقط دوستان افغانستان هستن که تو منتقاضات یا ما اطلاع نداریم شاید دوستان دیگه هم باشند. در این برست سرمایه کرده باشند. ولی الان مردم منتظرن ولی نتیجه از این آیورا ها اینم اگه توضیحاتی داشتید ممنون میشند بدید در این مورد. بعد دست سرمایه خارجی مثلا این دوستان افغانستان که برادر ما هستند، کش ما هستند، بیان سرمایه خوب کرده اومده. ولی آهالی کسی من دقاظت این مشکل هم داشتن که دوستان افغانستان میگن قیمتا رو می‌شکند یعنی قیمتا رو زیر بازار میدن و نمی‌دن همچنین اسطلاح‌های که گفتن یعنی نمیذارن مردم که مردم بومی هستن یا از بچای کلن ایران هستن یعنی نمیذارن کار کنی میگن میان قیمتا رو میشکنند و همچنین غذای‌هایی که نمی‌دن این سرمایه‌گزار خارجی حالا از این نظر به ضرر سرمایه‌گذاران داخلی هم هستش این بحثش که بیان خیمت ها رو بشکنن و هر قیمتی که خودشون تعیین کنن نرخ بزنند. حالا این هم برورم تو ممنون میشن بعد آمارای بولچهی در این ترهای در عفت دولت داشتن ترها رو میگفتن یه سری آن ترها رو هم میگفتن مثلا برای این, تر این مقدار دیکسریال از اینه شده این آمارای بودشهی نیمیدنه این, این کارشناس ها چی هستن، مثل کارشناس های ترکیان واقعا؟ یه تری مثلا از لحاظ چشمی هم تر رو نگاه کنیم شاید این مبلغ به اون تره نخوره ولی دیگه قانونی باید کارشناس تعیین کنه بعد یه مبلغ تعیین کنه بعد اون کسی که کارفرما هستش هم یه مبلغ میده ولی به نظر من موالغ خیلی بالاست یعنی با همین موالغ میشه به جاییتر دو تا سه تا در اجرای کردوشن بعد یه موردی هم که مردم شهر ما کلاهی من بودن از این پلاک های گزرمعقد که مثلا دولت اجازه میده که پلاک های در سطح استان میتونن ترابیه پاشه باشن میگفتن که وقتی می خواهیم بریم فلاک منطقه رو نمی بریم تمدید کنیم یه مبلغ بیمه ای از ما می گیرن بعد وقتی مثلا تری می در روزه که اومد که تر در روزه که باید میتونن ماشینا تردد داشته باشن در سطح اصطان یعنی بیمش، ماشین بیمه شده بود ولی باز هم تو این در روز می به مبلغ فلان باید ماشیناتونو ها هاتون رو بیمه کنیم یعنی دو تا بیمه همزمان یا در بحثی هست که مثلا بیمه که مثلا مبلغش کم شده با در طول سال بیمه هستش ولی باز دوباره بیمه بخوان بگن که اون بیمه اشتباه یه علاقی و این موارد هستش میگفتن ولی میگن نه باز یه مبلغ بالای میگیرن تا ماشینا ها همون کارا کارها گذرشون انجام بدن بعد یه مورد آخر هم مردم حالا بقول حالا مردم سرزمین اصلی مردم سرزمین اصلی های کرده خیلی دوست دارم بیان جازبه های منطقه آزاد رو ببینن کسانی که وسیله نقلیه ندارن یا مشکل وسایل نقلیه اصلیه خیلی دوست دارم بیان جازبه های منطقه آزاد رو ببینن در دقیقه با خانواده شون روزهای جمعه برن ساهل هم چیم؟ گشت رو بزارد برن گشت رو بزارد هستن یا منطقه لیپار خود منطقه آز در این مورد هایی که بشه یک کاری کردی دل مردم رو شاد کنی مرسی راست آتیش خرید که که همین فقط اضافه می کنم عجله اضافه کی اصلا سوال این پُسته چیه اجریان چی شده بعدا خود ایشون آیه خام می‌خواد مسیر آقای کریمی رو ادامه بده میخواد ارتباط با ارواح برقرار کنه ولی نمیتونه نه آیه که واقعا یعنی اون یک تخصص خاصی آقای کریمی داره شما هیچکس با آقای کریمی در این زمینه تلاش <تصفح> به رقابت نکنید اونجا این صندلی هم که خالیه به نشسته رو رو شده شما فکر میکنیم یا کریم این جنش هسته این سندلی کریم از سلام و خسته خدمت خلاه نگاران ممنون. خیلی تشکر از مدیران بگم محترم من تبازاد به خاطر بعدی که دارم تو بحث این جلسه در روز خلاه به چند تا سوال کلی داشتم جناب کردی عزیز بعد چند سوال هاشرهی تو بحث فضای مجازی دیده بودم نه خاصم سال تو بحث روند عمل کرد من تا وازاد. شما فرمودین که تمرکز رو بحث صناعی دستیه حالا چندتا تا واعی هم ما توی شهرک سنتی داریم اینجا توی خود شهرک کارگاه من دیرم شد. تو بحث پلاستیک ساندیم چرا واقع مثلا آیا جایگاه چاوار جایگاهش رو تو بحث تولیدات صنعتی جایگاهش رو پیدا کرده؟ ما فکر نمی کنم، پیدا کرده باشه، مشکل کار کجاست؟ آیا سرمایه نداریم؟ تو بحث سازی ورود ویژه پیدا شده؟ حالا آیا بهتر نبود مثلا تو بحث هتل سازی تو بحث صنعتی شدن بیشتر ورود پیدا می کردیم؟ حالا دلیلش چیه بیشتر هتل سازی ما اومدیم ورود پیدا کردیم خدمت شما ارز کنم تو بحث به یک سوال هاشیی هم تو بحث فضای مجازی من دیدم جناب کردی عزیز یکی اینکه گفته بودم معامله در تو منطقه آزاد ایجاد شده این نظرتون در دارین خصوص شیه این هم یه انجام بگیم از یه مورد دیگه هم بود چند در پیش گفتم آقای کردی با استاندار نیستن تو استان نیستن آقا گفتم چین و کجا رفتن این هم الله جلسات توی یه زمان خاصی می‌ادرن زمان هفته پیش وقتی های مشخص نبود منظور تو نبودم خیلی خیلی بکری حالا تصابیلی که تو مجازی منتشر شده بود مقایسه با سواحل و مناظر دیدن این مختلف دنیا من از آید این سوال پرسیدم به جواب نرسیدم حالا من فیلی میکنم ضعف تو بحث رسانهی حالا سازمان من بگم بگم شهرستان چهوار با توجب این که شاخی گردشگری چهوار زیاد داره من دیدم خالواراشون هم بالاست ولی با این حالم، تو که شلوغ خیلی جا چاوار نمیشناسند منظور یعنی چاوار نمیشناسند چرا ما تو بحث رسانه چاوار اینقدر ضعیف اینتون نتونستیم چاوار رو بشناسید با توجه به که شما تمرکزتون روی بحث گردشگریه این هتل سازی میکنیم بالاخره زیر ساخت اینا رو عادی می‌کنین چرا هنوز چاوار شناخته نشده ممنون میشن این سالت پاسخ نه چاوار نه جواب می‌خوام <تصفيق> سوال من دکتر در خصوص چیزی هم که تو نشسته خبرنگاران باتون گفتم در مورد امرکرد مالی منطقه است. بودج منطقه خودتون گفتید که از 300 یا 400 میلیارد الان به خاطر اون پروانه ساختی که الان دارید صادر میکن شده 700 و خورده میلیارد تومن. میخوام ببینم که اول منابع شما یعنی از جاهایی که منبع تأمین میشه غیر از این عوارض کالا که حالا تو دوریم و های قبلی صرفا رو همون عوارض کالا بود الان چقدر افزایش پیدا کرده چه منابعی دقیقا شده یعنی از عوارض کالا اومده به چه سمت و سوهایی و اینکه شما بر طبق پروتکل صریف و قانون سری مناطق آزاد از کجاها میتونید منابعتون رو تامین بکنید و اینکه این منابع رو کجاها صرف کردید تو این یک سال یک سال نیم یعنی چه پروژه های عمرانی رو مشخصن با بوجی منطقه آزاد شروع کردید. چقدر چقدر شروع حالا حالا اگر که این البته خیلی چیز نیست چون این تو سامان دست حقوق حقوق مازدم خیلی روش مانور داده میشه ولی اینکه چقدرش بوجی جاری منطقه بوده و اینکه تونس یعنی شما تونستید یه بخش هایی رو یه ردیف هایی رو برای کمک به حسابا سرزمین اصلی ایجاد کنید میدونم که مدرسه هایی رو با دست پیاره به دشاری شروع کردید بیمارستان رو تجهیز کردید چقدر این کارها رو انجام دادید در مقابل بودجه ای که دارید خیلی متشکرم و و یکی دیگه اینکه فولاد سازی پوسکو هم اگر شفاف بگید که انصراف داد یا نداد یعنی فولاد سازی پوسکو کره در حال حاضر تو منطقه آزاد هست یا نیست ولایت توسعه منطقه آزاد که لایه دومش چند روز پیش سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که تصویب شده این لایه،, لایه اول که الهاق میشه یعنی لایه بنادر حدوداً که موضوعات الهاقش انج... تسری قواندش انجام میشه و حالا لایه دوم حالا اگر حالا بیشتر به سؤالات بزرگ جواب بدید چون من اینا رو دعوت کردم سؤالات من رمونه برای بقیه خیلی متشکرم از, از این همه گذشت شما ممنونم شما به فرمتونه ما گفتم سلام و احوال سلام خدمت شما فیلم ما خاطر باشه بندر جنازه تهران بله آخرین خبر خدمت آخرین خبر بله بله, بله. بله, بله. داشتم فشار می کجا دیدم شما دوستان حالا دوستان بیشتر کوبازه بونی شوابه منطقه صحبت کردم ما فقط یک سوال درات شما دیدار وزیر سمت با وزیر هم و نقل ارتباطات اومان که در تا بحث سرمان بزاری اومان توی صحبت کردن این رو بفرمونید که چه میزان هست و در چه زنگیدن از اومان سرمان داشته باشه و اینکه که خدمتون ارز کنم که توی ترانزیز به افغانستان همای حدف سرمان بزاری اومان هست یا نه ما بریم خب این سوال نپرسید خب بسم الله هرما همانو بیان شادت با در فکر نه یه هرما خودش سوال هم این پرسه جواب همه خب سلام عرض میکنم و خداقوبت خدمت همکاران عزیز خیلی ممنونم از آقای عظیمی که حال کمک کردی که از قولهایی که ما دادیم تحقق پیبر کنه ما قول داده بودیم که هفته دولت حتما با عزیزان خبر ندار گفتی داشته باشیم. این روز کارت سخت من. اکسات خوب در نمیدن ببخشیدیم. <تصفيق> <تصفيق> خوشبختان زحمتی که آقای یوسفی و همکارا راوتمون میکشیدن شاخص ها و حالا عمل کرد. آقای سال ۹۷ رو در غالم این کتاب منتشر کردن. اتفاقات فکر کنم برای اینکه من تکلیف کرده بودم حتماً باید برسه یه جلدش رو بر من نمیدونم چهجوری رسوندن ولی برای شما زهاهرم فایل حالا کتاب شننگ تققد خواهد شد. ولی اطلاعات کامل بسیاری از پاسخهایی که خواستید اعداد و مستنداتش در داخل این مجموعه هست که فایلش رو تققد میتون میکنن و حتما میتونید با حالا تحلیل و هر نوع برداشتی که خواستید میتونید آزادید از این مجموعه داشته باشید با ذکر منبع. اما سعی میکنم این موضوعاتی که حالا دوستان به عنوان سآل مطرح کردم رو مختصر حالا و حالا اگر بعدا همسال دیگه پیش پیشو رو زمان داشتیم بازی و برودی به سآلات بعدی هم داشته باشیم خدمتون باشه سرکال خانم درسته دارشو من هم بوده قبل سوال پرسیدن البته محور موضوعاتشون بحث یه جورایی در واقع مسئولیت اجتماعی هست. یعنی سوال کلیشون مشخصم پروژه هایی که از تصفیلات روستایی استفاده کردن و پاسفگوریشون به جامعه روستایی دو تا سوال تحریک شما اشاره کردید. هم پرست پرورش ترمو و هم تصفیلات ببخشید پرورش تنسا، به دلیلی که در محدوده خارج از در واقع موقعیت شهرک صنعتی قرار دارن و اصطلاحا در محدوده روستای آبکان هستن از تسهیلات روستایی استفاده میکنن در مورد پروژه شوتورم تقریبا میتونم بگم 100 صد درصد اشتغالش در دوران ساخت مال روستای آبکان بوده و پروژه در واقع پرورشت تمسا هم هنوز به بهره برداری نرسیده یعنی اگر الان داره کاری انجام میشه اینا تو همون مراحل در واقع قبل از بهره برداری هستن قطعا اولویت ما در اشتغال ترها اشتغال جامعه محلی است و به تناسب نوع فعالیت دارن استفاده میکنن فقط این نیست پروژه یعنی ما فقط برای این دو تا پروژه خودمون رو مکلف به استفاده اشتغال محلی نمی همه پروژه های سنتی که دارن استفاده میکنن فارغ از اینکه ما توصیه میکنیم حتما تکلیف کردیم که با اداره کار هماهنگ باشن معرفی بشن برای خود اینها چون واحد تولیدی اساسا نیروی کار محلی تره نه اسکان داره نه هزینه رفته آمد داره نه بیلیت داره نه مرخصی داره به هر حال نیروی کار محلی حتما هزینه تمام شدهش برای یک واحد ارزونتر خواهد بود متأسف که مهمه کیفیت نیروی کار هم مسئله اساسی است یعنی حتما باید آموزش ببینن توانمند بشن و بتونن در اون کار انجام بشن که مجموعه های علم کاربوردی به دانشگاه بین‌المللی مون و های فنی حرفه‌ای که الان فعال هستند و رشته های متناسب با صنایع در حال استقرار رو الان در حال آموزش در مجموعه ها دارن مهیا می‌کنن نیروهای انسانی محلی رو برای اینکه بتونن در این صنایع قرار بگیرن بنابراین اشتغال و توجه به این موضوع بحث مهم نیست که در اولویت برنامه ما هست بحث بهسازی روستاها در هم روستای آبکان سال گذشته در به مدت فکر می‌کنم کمتر از 60 روز ما تعهد 60 روز کردیم ولی زیر 60 روز یک مدرسه اونجا ما ساختیم در روستای آبکان که الان در حال بهره برداریه یعنی من اول مهر رفتم اونجا بازدید دیدم مدرسه کیفیت خوبی نداره و اصلا ها اونجا نیستن وقتی داخل مدرسه رفتم فهمیدم چرا دانش‌آموزان نمیان یک یعنی سونای خشکی بود اونجا که بسیار هم نامناسب و بدون هیچ گونه امکاناتی. یعنی همون روز تصمیم گرفتیم زرف 60 روز اونجا یه محیط یه مدرسه کاملی رو راه اندازی کردیم که اصلا فضاش کاملا متفاوت شد و اتفاقاً بازدیدیم بعد از اون که داشتن اصلاً رنگ دانش آموزا تغییر کرده بود. در همون زمان هم برای انتقال آب روستا هیچ وقت آب نداشت. در همون روز تصمیم آب هم براش گرفته شد و یک انشاب و آب هم به وسط روستا منتقل شده و الان از اون انشاب در واقع برداشت آب داره صورت میگیره. این اونچه که مساله بوده به عنوان در واقع به عنوان مسائل اساسی ما پرداختیم. شما میدونید که متولی این روستا خارج از محدوده منطقه است. یعنی خارج از منطقه است. متولیش هم بنیاد مسکنه حتما هر برنامه‌ای که دوستان دستگاه متولی موضوع داشته باشه ما کمک خواهیم کرد که انجام شه. در مورد تیس هم داستان متفاوته. تیس روستایی هست در داخل منطقه آزاد. متاسفانه باید بگم بعد از 40 سال از عمر انقلاب و 25 سال عمر منطقه تا سال گذشته این روستا آب و شرب نداشت، شبکه آب شور نداشت. یکی از دلایلی که این در واقع مسائل مشکلات تیز همچنان برقرار بوده، عدم تعیین تکلیف حاکمیت و مالکیت در واقع بحث‌های حاکمیتی این روستا بوده. در بعضی از مقاطب دل... به دلایلی مردم دوست داشتن بگن ما با سرزمین اصلی هستیم در بعضی شرایط هم میگفتن با منطقه ایم. هر کجا مرفوعتشون بوده خوشبختانه باقی استاندار برحال حال هایی که کرده بودیم و همه که با فرماداری اچار انجام شد اختیارات حاکمیتی این روستا آنچه که قابل تفریز بوده خصوصا در بحث مدیریت روستا به بحث مسائل مربوط به اداره روستا تفریز شد به ما و حال یک کاسه شد تکلیف روستا مشخص شد که مال منطق است در همین دو سال محور اصلی از ورودی روستا تا مسجد بحث بازگشایی و آسفالتش کامل انجام شده خط شبکه آبش برای کل روستا طراحی شده تا مسجد اجرا شده انشابات هم داده شدن ادامه مسیر به چار و نیم کیلومتر الان فاز دو هست که شروع شده دارن تحریز رو انجام میدن. ارتباط خیلی خوبی هم با شورا و دهیاری برقرار شده و دوستان دارن کمک میکنن. جوانان روستا فعال شدن دارن کمک میکنن. معتمدین دارن کمک میکنن. پذیرفتن که اون فضای بیاعتمادی و فاصله بین آزاد و رستا تیز تغییر کرده و همراه هستند و این اعتماد ایجاد شده و دارن همکاری میکنن در بحث تعریض در بحث بازگوشایی ها که این مسیر داما پیدا بکنه سازمان هم مکلف میدونه خودش رو منابع لازم رو پیش بینی کرده که این در واقع بازگشایی ها انجام بشه همزمان با بازگوشایی شبکه انتقال آب انجام میشه و همزمان با بعد از اجرا شبکه انتقال آب آسفالتش و بقیه مسائلی که لازم هست دو تا کار دیگه در روستای انجام دادیم که مهممن اولیش اینکه یک طرح ویژه برای روستای تهیه شده به تصویب رسیده و همزمان هم یک شیوه نامه‌ای برای سنددار کردن یعنی واگذاری اراضی به مردم به روستاییان هم تنظیم شده که اتفاقا با خود شورا و در واقع مردم روستا هم فکری انجام شده در شورای حفاظت اراضی منطقه این نامه تصویب شده و الان با عنوان برحوان یک دستور العمل ان به زودی بحث مالکیت عراضی مردم رو هم بعد از اینکه تریزها و اون طرح بیجه پیاده سازی شد بحث مالکیت عراضیشون رو سنددار کردنشونم انجام میشه به نظر من این اتفاق بزرگی است و سازمان مسئولیت خودش رو در قبال این روستا تمام و کمال انجام داده البته دو موضوع دیگر رو هم دنبال میکنیم در کنار بهسازی و در واقع ارتقای کیفیت زندگی و تحمیل سرانه ها به دنبال اشتغال مردم و اونجا هم هستیم. طرح سولار سیستم هایی که الان در پشت بوم خیلی ازونه شروع شده نصف هست یک طرح حمایتی خیلی خوبی است که برای این روستا در حال انجام است در بحث سریادی و اشتغال جوانان بحث توانمندی سازی بحث اتاق های کارآفرینی مدارس هم برنامه‌های تمامم‌سازی دیگر است که در این روستا در این مدت برنامه شده به نظرم میاد که مجموعه فعالیت هایی که در این در واقع دو سال در روستای تیس شده در مقایسه با بر حال کاری که باید در گذشته انجام می شده قابل توجه هست هر قدم که مردم بیشتر همراهی بکنن کمک بکنن حتما ما با سرعت بیشترین در خدمات رو معتقدیم باید ارائه بکنیم باور من اینه که تنها روستایی موجود در منطقه باید کیفیت و سطحش خیلی متفاوت از اینی که الان هست باید باشه حتما باید تلاش بیشتری صورت می در بحث گردشگری خرید موضوع قیمتها موضوعی نیست که در سیاست منطقه این اتفاق افتاده باشه. بر حالال شرایط عمومی کشور وضعیت بازار ارز ضوابط و مقرراتی که در دولت به دلیل اون فضای جنگ اقتصادی که ما امروز درگیرش هستیم و خب بالاخره در شرایط جنگی حتما سیاست و تصمیمات متفاوت خواهند بود. الزامن ما هم به عنوان، بخشی از بدنه اقتصاد کشور در مقابل این شرایط باید حتما کمک بکنیم و حتما هم در خزینه هایی که اقتصاد کشور پرداخت میکنه سهم داریم طبیعتا پیگیر هستیم که این موضوعات مرتفع بشه به حال شرایط ارزی کردن در کشور وجود داره قدری احتیاط لازم هست برای کار هم واردات کالا البته با آرام شدن فضا که این روزها خوب قدری از اون شرایط التحاب یک سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده صوبات نسبی هم در اقتصاد در حال شکل گیری هست توافقات خیلی خوبی با وزارت سمت و گمرک انجام شده الله در ماه آینده بر اساس توافقاتی که انجام شده, شده و سحنیه ای که برای واردات کالای, هم، کالای فروش در منطقه برای مناطق تعریف شده عملیاتی شدنش و همکاری خود تجار انشاد شاهد شرایط مناسب تر و رونق بیشتری رو در بازارها باشیم قیمت ها منطبه دلیل اینکه کالا ها خارجی هستند تابعی از نرخ ارز هست که اون رو برحال نمیشه خیلی الان روش صحبت دقیقی انجام داد در ارتباط با فرودگاه خوشبختانه مجموه صادر شده توافق با وزارت راه انجام دادیم پیمان کار پروژه مشخص شده توافق نامش رو هم امضا کردیم در بحث تملک عراضی و حل مسائل مشکلاتی که در اونجا در محدوده فرودگاه جدید وجود داره با مردم مذاکره رو شروع کردیم نمایندهاشون رو معرفی کردن همه ی طلا شما این هست که هرچی زودتر انشاءالله عملیات اجرای فرودگاه رو شروع بکنیم و یکی از آرزوهای دیرینه مردم هم ارتباط با بحث فرودگاه بینمندی چهوارار که یک الزام اساسی است واقعای که مشکلات توسعه نیافتی که چاوار سخت بودن و مشکلی دشوار بودن رفته آمد هست که در کنار این فرودگاه موضوع اینلاین موضوع دیگری است که خب بیش از دو سال هست که ماقولول رو دادیم پیگیری هم کردیم. ما تا به دلیل همین شرایط و نساناتی که در حال شرایط اقتصادی منطقه پیش اومد به تاخیر افتاد. انشاءالله به زودی اون هم محقق خواهد شد و لطفاً کاملاً غیر رسمی به جهت اتنار آره این رو رکورد نکنید ثبت نکنید با منتشر نکنید چون می سوزونید اولین هواپ ما ما بارد شده در فرودگاه کنارک مستقر هست دو تا دیگه هم انشاءالله تا یک ماهانی ما آینده ببینید برن کاراشونو انجام میدن کار دوشواریست. هیچ هیچکی خبر نداره بطفاً باید. این رو هیچکی خبر نداره شما اولین باره به خاطر اینکه برها رو بدونید که این اتفاق داره این رو خبری نکنید آی دکتر فرودگاه پیمانکار مشخص شده چقدر قراره از منابع داخلی منطقه برد بذاری؟ بله جان؟ مخاموش کردم. نه این نه اون اون تیکه که با رسید رو لطفاً کار نکنید. اینم این بر خودمون آره نه. نه آره نه اینو چون ده. چون این یعنی سوزوندن الاینی که ما واقعا آرزو به چندین ساله ما بوده و انجام من... شده. توجی هستن. من... دکتر توجی هستن. چرا شد؟ میذم جزئیاتش نه سازمان بازرگ بخشه خصوصی مشارکت ولی الان در مورد من بگید ببینید تا که رسیدن یه جلسه تخصصی به اصلا ولی الان یکی براش آشیانه نیروهوایی چاوار هست جهت آرامش خاطرتون که خیالتون راحت باشه اتفاقی داره میوفردید دو تایی دیگر دو تایی دیگر شده ولی اینا فرایند انتقالشون خیلی فراینده سختیه دست دوم برای. نه دست دوم، دو هزار هفته. سه تا هستن دو تا دیگه هم ان دو تا موقعی که اون دو تا خریداری کردید میگید که شرکتش چیه از کجا خریداری کردید که جزیات نه جزیاتی که به اون وقت که نمیتونیم بگیم از کی خریدی نه نه, نه، از کی خریدی میدونم از واسطه خریدی برای. چون بچه اقتصادی پیگیر بودن این موضوع رو این بعد از اینکه خریدید اون دو تا رو میتونید بگید که از این هواپیماش چه نوعی؟ بله تمام توضیحاتتون بی اصلا ها. یه رونمایی نزدیم شما رو میبرین یه بلیت رایزن بیت می‌نداش. سفر مشهد و خب این فس... سفرمون از اینجا انشالله سفر مشهد خواهد بود. حتما از جا. خانواده خبرنگاران همه رو قول نمیدیم چون تعدادشون ممکنه زیاد بشه خب بعد فرودگاه بگید که از منابع داخلی تام فرودگاه برنامه توافق توافقنامه بر اساس منابع داخلی است با دو سه مجموعه ای که فاینانس می‌کنن مذاکره کردیم هم فاینانس داخلی و هم فاینانس خارجی رو همزمان داریم دنبال می‌کنیم هر کدوم که به نتیجه رسید اما اگر حتی فاینانس به نتیجه نرسسه بر اساس دارایی‌ها و منابع داخلی خود سازمان کار رو یعنی الان است فناست اتفاق نیافتاده مون تو ما قرارداد بست و کار شروع میکنیم چقدر کس 550 میلیارد تومان براورد فاز 1 فرود کاست شهر فرودکوی شهر دیارو فعلا فرود کاست فاز یکش در واقع ترمینال باند و برج مراقبت و اون بحثای فنی که مورد نظر باشه جان عددش رو ننویسید باز میگم اینم آفر ولی 550 میلیارد تومان قرارداد بستیم امضا کردیم یعنی که دیگه واقعا اجرا خواهند کرد. یه پیش‌بینی زمانی که ش... کی شروع میشه؟ فاز اول رو پیمانکارمون به دلیل که پیمانکار خیلی توانایی هست و اینم واقعا با... با... نباید جای عنوان بشه به دلیل که پیمانکار ما تحریم قرار با اسم دیگه ای کار خواهد کرد. فاز اولمون 24 ماه بعداً ان ان شاء الله میشه. نه کی شروع میشه؟ توی همه تلاشمون تو شهری برای یه کوچولو لازم داریم. آه اه، که نهایی شده تقریبا کارش انجام شده منتظر یک کمیسیونی هستیم. توی شهریور ان شاء شروع خواهد شد. مثلا من تو، مثلا توی مجلس دیرو بودم که مثلا گفته بودن یا شایعه بود که مثلا چند دوستام باید جواب جا. نه اصلاً هیچ روستای جابجایی نمیشه. ببینید اونجا یه سری ذوابت ارتفاعی وضع میشه که تو روستا براشون فرقی نمیکنه. نمیان برج بسازن تو روستا. ولی هیچ روستای جا نمیشه، بعضی از اراضی که مردم سند مالکیت دارن باشون توافق کردیم ازشون خریداری میکنیم حقوق مالکیت مردم کاملا در بحث ساخت فرودگاه رعایت خواهد شد به مردم هم اعلام کردیم و قطعا حق کسی اونجا زایر خواهد نش... نخواهد شد مضافت برون که یه خدمت بزرگی به شهر چاوهار انجام راجب جاده فرولگاه با وزارت راه پارسال توافقی رو امضا کردیم در حال طرحی دوبانده کردن جاده چابهار به کناراخت هستن پروژه مهم وزارت راه هست در دستور کارشونه ما هم به عنوان در واقع یکی از این افعان این پروژه اعلام کردیم توافق هم کردیم که مشارکت بکنیم باش منطق پروژه پروژه وزارت راه هست با ملییان مسکن در روستای هیچ مسئله ای نداریم روستای تیس بعد از تفیض اختتر که انجام شده بحث بازسازی و تکمیل روستا کاملا در اختیار سازمان هست به عنوان یکی از پکررا های سازمان طرریح ویژه که تعریف کردیم براش طراحی کردیم به همین دلیل بوده و بعد از این در واقع تعین تکلیف مالیکتی که انجام شده عملا ما مسئله ای در ارتباط با اجرای پروژه روستای تییس نداریم. همین الان عاق بر بهاحسازی روستا، مناقصه اولین مرکز جامعه سلامت روستا هم در حال برگزاری هست که انشاءالله بحثای بهداشتی و درمانی روستا رو هم در برنامه داشته باشیم در حوزه آموزش یک مدرسه شروع شده دو مدرسه دیگه انشاءالله در برنامه هست که ساخته بشه و سایر خدمات عمومی مورد نیاز روستا توسط خود سازمان تهیه خواهد شد راجع به الان عرض کردم پروژه گردشگری لیپاری یکی از مجموع پروژه هایی است که در ارتباط با خیلی شما هم بکنم که در بحث ببینید در ارتباط با حالا من سوال یکم تلفیقش می‌کنم با سوال آقای کیخا که حالا بالاخره ما اولویتمون سرعت هست یا گردشگری را ما اولویتمون هر دو هست هر دو ظرفیت دارن در منطقه هر دو پتانسیل دارن تا هر کدوم برنامه جداگانه خودش رو داره ما در حوزه صنعت دو هدف بزرگ پتروشیمی و فولاد به عنوان صنایع بالادستی داریم دنبال میکنیم. همزمان با اون صنایع دیگری که مزیت رقابتی منطقه هستن مثل حوزه شیلات مثل مواد غذایی که منتکی به بازارهای در واقع محصولات و بازارهای کشورهای پاکستان و افغانستان هستم رو هم سر گذاری کردیم و اتفاقا توفیقات خوبی داشتیم ما الان بیش از حدود 20 واحد فراوری و بسته‌بندی مواد غذایی داریم که در واقع وابسته به بازار کشورهای همسایه ما هستن در حوزه مصرف اون کشورها ما حدود بیش از باز 20 واحد 245 5 واحد پتروشیمی داریم که محصولات پلاستیکی تولید می‌کنن و اینها هم بازار مصرفشون کاملا بازار پاکستان هست خدمتون ارز کنم که ما در حوزه تولید فکر میکنیم که الان چابهار در حال گرفتن یک هویت تولیدی برای خودش هست وقتی که ما حدود 250 واحد تولیدی در منطقه داریم که پروانه بهر برداری دریافت کرد، و چیز حدود 120 تا اینها الان در حال کار کردن هستند و ارزش تولیدات ما از سال 92 تا سال 90 خدمت شما عرض کنم هفت تقریبا حدود بیش از 20 برابر رشد کرده نشون میده که یک اراده و یک سیاست حرکت بر مدار تولید در این منطقه داره دنبال میشه و تعداد واحدها و در واقع پروژه هایی هم که انجام شده این رو شو میده ما الان در سال گذشته سر قرارداد برانداد سرمایهگذاری منقد کردیم که اینها همه الان یا در حال ساخت هستند یا بر حال مراحلشون رو دارن تعی می خدمت شما اعرض بکنم که طبیعی هست که این واحد های تولیدی خودشون بستر رویی کرد دلایلی که شاید تا حالا در تولید کاری نشده نبود زیر ساخت های لازم بوده ببینید ما واحد تولیدی که نتونه مواد اولیه به راحتی بیاره یا نتونه محصولاتش را از اینجا صادر بکنه طبیعی هست که اینجا مستقر نشه اما با شکل گیری بندر امکان پهلوگیری گیری کشتی امکان واردات مواد اولیه امکان صادرات محصول از اینجا حتما جذابیتی بیشتری برای واحدهای تولیدی وجود داره و ما در های سرمایه گذاری که آنها در منطقه داره روز به روز افزایش پیدا میکنه بیانگر این هست که میتونیم الان در واقع بگیم که موتور توسعه صنعتی چابهار روشن شده با اتفاقاتی که در حوزه فولاد و پتروشیمی هم داره میفته و پروژه هاش با پیشرفت خوبی حداقل از خاک در اومدن الان و قابل مشاهده هستن این امیدواری رو برای صنایع کوچک و متوسط هم ایجاد میکنه که اونها هم بتونن در این مجموعه در واقع ورود پیدا بکنن و مباحث رو پیش ببرن برالیین در این یه بخش تولید هست در عضه گردشگری هم ما میدونیم همه کسانی هم که به چاوار سفر کردن اعتراف میکن که یکی از واقعا طبیت های بکر و بینازیر ایران رو ما در محدوده سواهر مکران به صورت عام داریم و در چاوار و کنارک به صورت خاص و این همه جذابیت رو نمیشه نادیده گرفت. معضل اصلی استفاده و نمای به نمایش گذاشتن و معرفی کردن این همه جذابیت دو مسئله است. یک سفر ارزان، دو اقامت ارزان نه فقط ارزان که مناسب در رنجی که مورد نیاز هست ما هر دو اینها را برنامه‌ریزی کردیم اعلان و فرودگاه برای اینکه دنبال میشن که سفر را ارزان بکنیم و هتلهاییم که در حال ساخت هستن برای اینکه بتونیم در واقع اقامت رو ارزان بکنیم یک اصلا اقامت فراهم بکنیم شما میدونید انا ما برای همایش های 400 -500 نفر در چابهار. مشکل داریم نمیتونیم میزبانی بکنیم برای اینکه ما یک جا500 تا تخته هتلی در یه مجموعه نداریم که بتونیم میزبان یک برنامه ای باشیم. خب لازمه که این هتل ها در واقع ایجاد بشه خود این هتل ها به دلیل حجم بالای سرمایه گذاریشون وادار میکنن صاحبان سرمایه رو که سری مشببههایی رو برای گردش قرار بدن که بتونن در واقع بیان شما میدونید در خیلی از پروازهایی که در مناتره گردشگری حتی در داخل ایران دارن، با قیمت ارزون سفر میکنند، چارتر هتل ها هستند یعنی حال اگر طرف میگه شما میگه چرا بلیت ارزون نمیشه؟ خب بلیت به چه انگیزه ارزون بشه؟ چه کسی باید بلیط رو ارزون بکنه سازمان که نمیتونه سوبسید بده حتما یه منتفعی باید اینجا وجود داشته باشه که بره چارتر کنه سوبسید بده مشوق بده که بلیط ارزون بشه در واقع یک موضوع جریان گردشگری جریان و خمرگی یعنی نمیتونه شما بگید اول گردشگر بیاد بعد ما زیرساخت فراهم کنیم یا اول زیرساخت فراهم بشه بعد گردشگر بیاد اینا باید همزمان با هم کار بکنن تا بش انجام داد. در کنار این ظرفیت های که انجام میشه ما روی بحث تفریحات و فضاهای گذران اوقات هم فکش کردیم دو تا سایت گردشگری پیش بینی شده یکی لیپار یکی بلوچ لیپار که شما اشاره کردید همون ای هست که قراردادش منعقد شده کار داره کار میکنه انشالله بر اساس برنامه زمان بندی که دارن پیش میبرن برای پایان امسال مجموعه لیپار به بحر برداری خواهد رسید. مجموعه که حدود تقریباً سی هکتار هست چی هکتار. مجموعه گردشگریه مصلاً چی مجموعه ای از در تفریحات خیلی حالا در یک سایت گردشگریه که اونجا هم اقامت‌های معقد برای مسافران پیش بینی شده توش هم رستوران و کافی شاپ و, و بعد پیوندش با مجموعه اون تفریحات دریایی پایین هست خود لیپار خود همین ریپورت از مجموعه <تصفيق> که الان دارن کار میکنن این طرحشو ببینید از مجموعه ویلای مجموع منطقه تامیره به پایین میرسه تا از این پشت به پشت انبار دور میشه سایت این داره, هم داره اه اه اینجا نه سایت شنا بعد از پیشتی سازی اونم جز پروژه هست از انتقادی های دکتر رایکر دادن گفتن بله. که منطقه این سایت شنا درست نکرده یا زیر ساخت سرویسی نه درست نه درست نه اونم میرسه ببینید الان راجب سرویس بهداشتی منجوشون سرویس آره سرویس بهداشتی همین الان دوازده نقطه در حال ساخت داریم دوازده نقطه الان در حال ساخت هست سرویسی بهداشتی تو منطقه سایت شنا هم طراحی شده برد از کشتی سازی و در واقع انشاءالله فازه یکش که شناگاه هست مجموعه خیلی مفصلی اجابه کنم ترشنم نداری در واقعی سی شناگاه در واقع فقط بستری برای شناه نیست یعنی اون قسمتی که فضای محصول برای تفکیک خانم ها آقایون برای شناخت انسان اه... نه خودتره که تاد شده که الان دارن اسناد مناقصه رو آماده میکنن ان در 6 ماه دوم دو یعنی برای ایو امصار حتما شناگاه رو هم ما قول دادیم که برسونیم امسال، سایت شنا حتما در منطقه در ایام خوین داشت یک کلوپ ورزشی هم، کلوپ کلوپ تفریحی هم به صورت خاص در هم قسمت که اشتسازی برنامه‌ریزی کردیم که ان شاء این دو تا مجموعه انجام میشن یکی از برنامه‌های اولویت دارمون که امسال انجام خواهد شد دسترسی به پیکره ششم که در واقع اردوی پیکره ششم گردشگیمون هستن اون محور اصلی که وصل میکنه مردم رو به ساحل بعد از کشتی سازی انجام خواهد شد شناگاه و کلوب تفریحات دریایی هم دو تا پروژه‌ای هستن که امسال در حوزه گردشگری کار خواهند تر توسعه محدود منطقه همونطور که استقرارداری در دولت تصویب شد لایحهش به مجلس رفت در کمیسیون شوراها به تصویب رسید در دستور کار کمیسیون اقتصادی هست انشاءالله برنامه داریم که از کمیسیون اقتصادی ظرف یکی دو هفته آینده بازدی دور از منطقه داشته باشند و در دستور کار صحن علنی قرار بگیره همه تلاشمون رو می‌کنیم هر زودتر ان در منتظر مجلس هستیم محدودش از شهر جدید در دیپار و سراهی در واقع کنارک بالاتر سرای کنارک که الان کنارک جاده پلیس راه شوار است فرودگاه جدیدی که قرارداد بستیم در طرح توسعه در محدوده منطقه آزاد قرار میگیره و خدمت شما عرض بکنم ان هر چه زودتر عملیاتی خواهد شد این یکی از اون اتفاقاتی است که بسیاری از مشکلات و معضلات و دلایل توسعه نیافتگی منطقه رو حل خواهد کرد شما میدونید که منطقه آذربایجان 25 سال از عمرش میگذره و هنوز یک مرز رسمی نداره و این طرح توسعه موضوع مرز رسمی منطقه رو هم مرز هوایی و هم مرز دریایی رو حل خواهد کرد با الحاق بنادر لایحه الحاق بنادر و محدوده منطقه در توسعه با هم ادغام خواهند شد یعنی با هم به صحن علنی برای رای گیری خواهند رفت دوم دکتر دو تا لایحه تخصیص کرد نه اون لایحه در واقع لایحه اوله لایحه اول که الحاق بنادر بود در لایحه در پیوست اون هشتم منطقه جدید بود مجدد جداگانه لایحه ای فرستاده شد از طریق وزارت راه دنبال شد که بنادر مجدد جداگانه به منطقه صورت بگیره همزمان هم طرح توسعه خود محدوده‌ی منطقه یعنی ستاره ایه شد یکی که تصویب شده قانون شده منتظر تایید شورای نگهبان هیچ چی دومی بنادر به تنهایی هستن سومی طرح توسعه محبه منطقه است که بنادر هم داخلشه هماهنگی که با کمیسونا و با مجلس انجام دادیم این هست که در واقع این دو تا دومی با هم ادغام بشن و یک لایه اداره اولی که دیگه حالا انجام شده و اون تو دستور کار اون هشت منطقه است ولی این دو تا اگه انجام بشن عملاً اونم دارن دیگه ولی توی طرق دیگه است. عملاً اینا هر سه یک یانه. یعنی. ما بر این که در واقع سلیتر به نتیجه برسیم، همه کانال‌ها رو دنبال کردیم و هر کدومش از اینو به نتیجه برسته همون در واقع هدف محقق خواهد شد. راجب حمل و نقل عمومی تکلیف کردیم. مدیریت شهری منطقه آزاد با شهرداری چابهار در حال طراحی یک مدلی هستند که ما در واقع سازمان می و اون مجموعه که خدمات همرو نقل عمومی رو باید بده در قالب یک قراردادی سازمان ازش خدمات بگیره و یه سری در واقع کمک هایی رو در بحث بازسازی و بهتسازی همرو نقل عمومی انجام بده همینطور با جامعه بازاریان همین دیروز هم توافق کردیم که خود دوستان در قالب یک مجموعه تعدادی ماشین یعنی تاکسی به معنای خدمات عمومی نما تاکسی گردشگری ماشینایی که بیشتر برای گردشگرا و برای در واقع مساف با برول کرده گردشگری تهیه بکنن ما هم پیگیری میکنیم خوشبختانه دولت یک رو هم صادر کرد در هنوزه ابلاغ نشده برای خدمات عمومی هم نقل عمومی و گردشگری واردات خودروهای خاص مثل اتوبوس مثل تاکسی مثل ماشینا های گردشگری رو در واقع مصابقه دادن کنشاال بللا خواهد شد در راستای در جای کردن اون حتما ما، در اولویت برنامه هامون بهبود خدمات هم نقل عمومی شهر و منطقه هست اساسا ما منطقه و شهر رو از هم جدا نمیدانیم به دلیل اینکه مجموعه خدمات و در واقع کارهایی که باید انجام بشه در هر دوتا مجموعه مشترک هست برای سمن ها هیچ محدودیت وجود نداره سمن به ماهیتی که شکل میگیره در هر کجا میتونه فعالیت بکنه سازمان هم ارتباط خیلی خوبی با همه س ها داره زمان هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان آموزش بهداشت و تمام منسازیدار فعالیت میکنن مورد حمایت سازمان قرار می گیرن و برنامه های مشترکی رو باشون در گذشته هم داشتیم مسیر ادامه خواهد داشت. مجوزه گردشگری ایران با تفیض اختیاری که جوا وونسان انجام دادن عملا مجوز هایی که در منطقه صادر میشه به دلیل اون تفیض اختیاری که صورت گرفته برای سرزمین اصلی هم متبر بود. در بحث ورودی و خروجی هم آقای بلوچ بله ما هم معتقدیم شفافیت یعنی اینکه شما در واقع من یک اختلاف نظری با شما دارم شما میگه ورودی و خروجی رو مشخص کنه اون در واقع هدف من بودن موضوع هست که چه دادهی داره چه خروجی داره اما شفافیت یعنی این که در هر مسیر در این مسیری که در این اتفاق مفته در هر مرحله مخاطب ما بداند که چه وضعیتی داره اتفاقاتی که در وضع پورتال سرمایه منطقه، سیستم کنترل پروژه منطقه و ثبت شرکت ها افتاده برای سرمایه یک فرایند کاملا شفاف است اگر چند سال قبل یک سرمایه مراجعه می و می‌خواست بدونه که پروژهش در چه مرحله‌ای واقعا دونستن این که الان پروژه من در چه مرحله‌ای هست یا درخواست من به کجا رسیده کار دوشوالی بوده ولی امروز شما از مرحله که تصمیم میگیرید به عنوان یک سرمایه گذار در منطقه وارد بشید هر لحظه میتونید بدونید که پرونده شما برای چه مدت در دست در کدوم واحد به چه دلیلی معطل شده و هر اتفاقی که در پرونده شما میفته یه پیامک برای شما میاد این پورتال سرمایه گذاری یکی از بزرگترین خدماتی بوده که در این دوره برای شفافیت سیستم سرمایه در سازمان استقرار پیدا کرده و اون شفافیتی که مد شما هست رو به صورت کامل در حوزه سرمه انجام داده این رو ما در حوضه سایر خدماتی که سازمان باید ارائه بده داریم دنبال می‌کنیم یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در حال افتادن هست و انشانا به زودی در واقع عملیاتی ابت عملیاتی شده منطقه در حال بارگذاری هست یعنی این اتفاق در حال افتادن هست و عمومیت پیدا میکنه و مردم میتونن ببینن سامانه جی است منط شما راجب و هر قطع زمینی هر اطلاعاتی که بخواید با کلیک روی نقشه در این سامانه میتونید تمام اطلاعات قراردادی و فعالیتی و نظارتی اون پروژه رو بتونید انجام بدید اینها واقعا وقت و انرژی زیادی برده و البته خیلی ها ممکنه علاقمند به این اتفاقات نباشند شاید یکی از دلایلی که بر هر حال خام اشاره کردن راجب معامله گرم به حال بحثایی که این روزها در فضای مجازی زیاد میشنوید همین شفافیاتی که در سیستم صورت گرفته یعنی اتفاقاتی که افتاده دیگه خیلی از اتفاقات زیر در پرده و در پنهان نیست شفاف هست روشن هست حتما خیلی از اتفاقاتی که در گذشته میافتاده الان نمیتونه بیفته و این به منافع خیلی ها آسیب زده و طبیعی هست که این در واقع موظع نشون بدن اگر که معامله قرنی صورت گرفته در اون سامانه گذاری همه اون معاملات ثبت شده کنترل شده اعتبار خوشبختانه به دلیل توسعه زیرساختها ساختها به دنبالش به دلیل شفاف کردن و سریع کردن فرآیندها و به دنبال حمایت هایی که دولت داشته در راستای عنایت ویژه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن و تکلیف کردن که در سواحل مکران و در چابهار گذاری بشه ما با انبوهی از سرمایهگذاران مواجه بودیم ما فقط در سال گذشته بیش از نقصد تا درخواست سرمایه گذاری ثبت کردیم در منطقه که فقط به تقریبا در سال نوودشش حدود 20 تا و در سال نووده هفت به سد تاشون تونستیم پاسخ بدیم. یعنی قرارداد به از نقصد تا تا درخواست سرمایه گذاری تقریبا چیز حدود 300 تاشون. یعنی کمتر از یک سبومشون به قرارداد رسیدن اگرچه که این مجموعه قراردادهایی که در این سه سال بسته شده به لحاظ م... تعداد قرارداد و مبلغ قراردادهای سرمایه‌گذاری از 8 سال قبل از اون بیشتره یا شما میتونید با چشم هم ببینید. از اون طرف قراردادهای سرمایه‌گذاری بستیم، دو تا کار بزرگ دیگه هم در این حوزه انجام شده. یک فرمت قراردادهای ما تغییر کرده. دیگه اینطوری نیست که کسی زمین بگیره کار نکنه و از رانت زمین استفاده بکنه. قراردادها نوعشون حق انتفاع هست. مادامی که شما نساختید و پروانه بهره برداری نگرفتید هیچ حقی برای شما اونجا ایجاد نخواهد شد طبیعی هست که این هم منافع خیلی کسانی رو که قبلا زمین می گرفتن و از در واقع نگه داشتن زمین و اجرا کردن پروژه ها منفعت می‌بردن امروز اونها هم منفعت نمیبرن ما بیش از حدود تقریبا 60 پروژه رو الان از مجموع قرار داده قبلی که بودن تو فرآیند فسخن این زمین ها رو ازشون پس می‌گیریم خب اینها طبیعی هست که بر حال حواشی رو هم داشته باشه چرا, لاب... چرا دارید پس به دلیلی که اجرا نکردن سوء استفاده نشده استفاده نشده پروژه قرارداد بسته زمان داشته شما سه سال زمان داشتید پروژه رو بسازید نساختید آ یعنی با نرخ مصوب واه تولیدی اون زمین رو بهشت دادید بله مثلا علی... ازش ب... قراردادش رو چون قراردادهای ما به شرطی زمین ما... سند مالکیت میتونه دریافت بکنه که پروژه اجرا شده باشه به ما تقریبا حدود فکر می‌کنم آخرین آماری که و اینا توی یه سامانه ای ما الان ثبت هست یعنی ما حدود نه تنها فقط قرارداد که خودمون منعقد کردیم قراردادهای قرار و 590 قرارداد رو ما در این سامانه ثبت کردیم بود بعضی از این قراردادها مال سال مثلا دهه 80 ان حتی 87 80 جان اسم سامانه چیه پورتال کنترل پروژه منطقه سیستم داخلیه ولی این قابل رصد هست قابل کنترل هست ماهیانه از پروژه ها باید اونجا گزارش ثبت بشه های مهم در این سامانه ثبت یعنی اگر مثلا امروز باید دوره بازدید انجام بشه خودش آلار میده و شما باید برید بازیت انجام بدید حتی برای اینکه ما بتونیم کنترل بکنیم که در واقع ناظر ما هم خطا نکند جایی که در واقع بازدید انجام میشه با در واقع دستگاه هایی که در اختیار دارن همونجا باید عکس بگیرن و در خود سامانه اینه عکس قابل آپلود کردن نیست شما وقتی می‌خوای عکس رو آپلود کنید دوربین فعال میشه باید عکس بگیرید یعنی حتما باید عکس می‌گیری از جایی یعنی نمی‌تونید عکس جای, جای دیگه ای رو اونجا آپلود بکنید و این در واقع نظام کنترلی هست که در ارتباط با هم آرامش بشه سرمایه گذار و هم اطمینان خاطر ما انجام شده یعنی با, با این تفاصیل یعنی موقعی که زمین داره از شما تحویل بگیره سرمایه گذار پروژه رو اجرا بکنه تمام که شد یعنی بحر بردایی رسید واد تولیدی شما بعد سند رو بهش میگید بعد از اون تازه باش بهش واگذار میکنیم بله بهش تازه میتونه اونجا قرارداد واگذاری با ما ببنده یعنی ما یه دو تا قرارداد, یه قرارداد حق انتفاع داریم تا زمانی که به برداری میرسه زمانی که بهره برداری رسید تازه قرارداد واگذاری منقد میشه و میتونه در واقع وجه زمین رو کامل بپردازه و ا سرات. یعنی قبلا هم اول سنه رو بهش نه قبلا یه قراردادی میبستن که از اول طرف مالک بود و آه. ما اگر میخواستیم فسخ بکنیم قرارداد رو بیش از یک سال زمان می‌برد فسق قرارداد. مزیت حقوقیش. بله بحث حقوقی. ما الان با این تیپ قرارداد جدیدی که در واقعا داریم عمل کنیم باهاش دیگه این مسیر رو کوتاه کردیم. یعنی اصلا طرف مالکیتی نداره که ما بخوایم فسخ کنیم. همون قرارداد مدتش تموم بشه اصلا تو تنوی ما هدف آزادینه یا فقط معنایی نه این از رو ما پایلوت در چاوار اولین بار اجرا کردیم و سال از سال 96 تقریبا ما بحث چارچوباشو شروع کردیم در سال 97 دیگه واقعا محکم روش عمل کردیم 96 پایلوت بود یه سری مشکلاتی رو بعضی از سرمایه‌گذارا در ارتباط با استفاده از پسیلات در این نوع قراردادها مطرح میکردن که همه این موضوعات رسیدگی شود انجام <تصح> میخوام بگم که این موضوعات و مباحث و حواشی که دارن درست می‌کنن و گاهی همیده میشه عمدهاش ریشه در شفافیت داره آقای بلوچ شفافیتی که در سیستم استقرار پیدا کرده و بسیاری از نورهایی که در جاهای تاریک تابونده شده این مسائل و موضوعات رو دنبال میکنه سازمان هم محکم بر این اصول استوار هست چرا که ما معتقدیم بنگاه اقتصادی در شرایطی میتواند موفق عمل بکند و اهداف خودش رو دنبال بکند که در عین شفافیت و سلامت و سرعت کارش را انجام بده بنابراین هر در واقع بحثی کنترلی شفافیتی که لازم باشه در سیستم انجام بشه کل سازمان پاسخگو نسبت به این موضوع هست. این سامانه ها هم سامانه هایی هستند که مستقررن و در دسترس دستگاه نظارتی میتونن قرار بگیرن و خود سرمایهگذاران هم هر موقع مسله داشته باشن به راحتی میتونن مسائلشون از طریق این سامانه ها دنبال بکنند. خدمت شما عرض کنم در بحث هتل‌سازی ارس کردم توضیح دادم چرا ورود پیدا کردیم دلیل اصلیش نیازی هست که هتل ببینید یعنی اقامت یعنی هر کاری که می‌خویم انجام بدیم حتما باید از طریق شما اول اقامت رو مهیا بکنید تا بتونن این در واقع استقرار خاصی صورت بگیره در حوزه صنعت عرض کردم معمولیت و مسئولیت در واقع صنعت یه شاخه کاملاً مجزا است دنبال میشه اهدافش هم مشخصه صنایه‌مون هم هدف گذاری شده روند توسعه صنعتی در منطقه هم نشون میده که روند رو به مثبتی است واحدهایی که در حال استقرار هستند ارزش تولیداتی که در منطقه شما می‌بینید از 50 میلیارد تومان رسیده تقریبا به هزار میلیارد تومان و این مسیری که دارید پی کنید با واحدهایی که الان در حال ساخت هستند نشون میده که ما در آینده در واقع یک موجی از تولید رو در سالهای آینده در منطقه خواهیم داشت باورمون بر این هست که چابهار در مسیر صنعتی شدن و تولیدی شدن قرار گرفته که این عوامل بسیار زیادی موثر درش بودن از جمله سیاستگزاری و روانسازی سیستم‌های استقراری در این حوزه. چند هفته پیش که گفتن نیست در رستان برای من مسافرت خارج از کشور بودم چین بودم منتها از اون که ابلاغیه داریم سفرهای خارجی و حتی میهمانان خارجی رسانه‌ای نشند در حوزه چابهار به دلیل حساسیتایی که وجود داره چون چابهار همونطور که میدونید از تحریم ها حال خارج هست ها کمتر هست ما نباید موضوعات و اتفاقاتی که در چابهار میفته یا برای چابهار میفته رو خیلی بولدشون کنیم مخصوصا روابطمون با خارجی ها رو که یه وقتی برای اونها مسئله نشه منطقه سفر ما دلیلش بحث فرودگاه بوده و خدمت شما از بکار است. با استاندار نبودم آره با استاندار کجا بوده آیا استاندار؟ استاندار داخت چاوار بود اتفاقا استاندار جایی نرفته از دو ماه پیش دارم تن گم شده چند روزی نبود. شب مراجعه شده برنامه کرد. اون که قربت رفت و برای خانواده پسرش عمل داشت. خانواده شما میگم نه اینو میدونید. ما قرار خودش موقع خودش. من آقا به با آقای بانک من با آقای بانک و مدیر عامل چین بودم یک هفته. 6 روز برای همین قضیه برای هم بحث فاینانس فرودگاه بوده و من تصرف کردم موضوعات رو حتی هیچ خبری شما جا یعنی نبوده اینا اون میدونید که برای روابط با چین یک شورای در واقع سیاست‌گذاری شکل راهبردی شکل گرفته راهبری شکل گرفته در کشور که ریاستش با آقای لاریجانی هست سفری هم که به چابار بازم اگر خاطر تو باشه محرمانه بود رسانه‌ای نشد در این راستا بودی برنامه‌های رو دارن دنبال می‌کنن فکر بد نکنید آقا ما چین بودن اسنادشان موجوده بهتون راه میکنه <تصفيق> خدمت شما عرض کنم که آیورا سال کردن آی بلود شرکت های خارجی ما الان از 15 کشور حدود 300 شرکت ثبت شده خارجی داریم در منطقه خیلی از اینها شرکت های در واقع تولیدی یا سرمایه‌گذاری هستند که با توجه به شرایط کاراشون کن میشه یا تون میشه اما خیلی از اینها شرکت های بازرگانی و همراه نقدی هستند که دارن فعالا کار میکنن آیوراد فرصت خوبی بود برای شناسوندن چابه و به نظر من تصویر و قباره چابهار رو تغییر داد ارزامن در اون همایش حمایش همایش اقتصادی سرمایه گذاری نبود که ما بگیم اینقدر قرارداد در اون بسته شد اصلا هدف از اون اجلاس این نبود معرفی بود و حضور در یک مجمع الملدی که ما عضویت داریم. آیورا میدونید یک اتحادیه است از کشورهای حاشیه اقیانوس هند که ایران هم عضو به اون اتحادیه است و خب برنامه‌های مشترکی در اون اتحادیه برگزار میشه. این اجلاس هم قرار بوده برگزار بشه. بعد از اون چند تا از این اجلاس در اندونزی برگزار شد، در آفریقای جنوبی برگزار شد. در جاهای دیگه هم این در واقع کشورها عضو با موضوعات مختلف برنامه دارن. اون برنامه‌اش رو ایران در چابهار برگزار کرد. شاید یکی از خروجی های اون همایش همین سالون هست که مونده و در این دو سه چه همه برنامه‌های خوب درون اجرا شد. بعضی از دوستانم با هم میگن آقا هزینه های عجیب غریبی در اونجا انجام شد. یکی از خزینه‌ها همین سالون بوده که مونده کسی با خودش نبرده ولی بالاخره چون اجلاس بزرگی بوده انجام شده سالن مناسبی میخواسته و خب به حال اون سالن نماشگاهی و اون سالن اجلاس و متا اون که اونجا اتاقای کنفرانسی که وجود داره واقعا جز مواردی است که تقریبا هر کسی اومده و خواسته برنامه ای رو اینجا اجرا بکنه شما ببینید ما در دو سال گذشته چند همایش و نمایشگاه برگزار کردیم قبل از اون چند تا بوده کسی به دلیل نداشتن این زیر حاضر نبود خوب یه که میان اینجا نمایشگاه برگزار میکنن یا همایش هتل میخوان خرید دارن قضا دارن اقامت دارن حتما بر اقتصاد منطقه اثر گذارند اجلاس روز چابار همش ببینم بله شو ببینید الان فقط در سال 96 ما 25 تا 14 تا نمایشگاه و همایش تخصصید در واقع در منطقه برگزار شده در سال 97 شده 22 تا حالا اگر 95 شو برید، مثلا ممکنه دو تا سه تا بیشتر نبوده حال آمار 95 هم اگر یعنی این همایش ها بعضی از دوستان گاهان میگن آقا اینا ریخت و پاشه. نه اینها داره اتفاق میفته انجام میشه و همه اینا سرریز داره برای جامعه. سرریزش رستوران هست، تاکسی هست، اقامت. اقامت هست، خرید از فروشگاه هست، بالاخره گردش کردنن اینا دیگه میان اینجا شما خودتون یه سفر میدید از او بر دست خالی بر نمی گردید خونتون. همه اینا اثر داره ماتا دوستان میگن آقا چرا این ما مامران عمده حمایتی که داریم انجام میدیم در این حوزه مثلا در حد سالون در اختیار قرار دادن یا اسکان رایگان دادن یا مثلا کمک هایی خیلی جوزی بستگی به نوع برنامه این که داره انجام میشه یا مثلا گاهان به بعضی از همایش هایی که ما حمایت می‌کنیم صحبت میکنن همین جشباره مدل باس اتفاق کمی بود در منطقه چقدر از چند تا کشورهایی یوسفی شرکت کرده بودن 17 تا 18 تا کشور 16 تا اینجا 16 تا کشور اینجا شرکت کردن. خب تمام این اخبار برگزاری این برقرار شد کارگاه های اونجا برای سنتگرهای ما برگزار شد ارتباطاتی برقرار شده در, در واقع طراحان و سنتگرهای ملی خودمون که هلا دارن بومی ما باشون کار میکنند اینها اتفاقات بزرگ و مهم بوده به نظر من همیشه نباید از یک بوده حال صرفا هزینهی به موضوعات نگاه کرد باید خروجی و اثر بخشی ها رو هم دید خدمت شما اعرض کنم در ارتباط با اینکه افغان ها قیمت ها رو میکنن سرمایهگذاری خارجی بله ما به دلیل همین رفتاری که خورده فروش های در واقع خارجی در منطقه انجام داشتن و بعضی از صوف رو تقریبا در قبضه خودشون در آوردن سال گذشته مصبه داشتیم دیگه مجوز خورده فروشی برای شرکت های خارجی صادر نمیشه مگر اینکه کار مشترک با سرماگذار داخلی بکنن. الان تمام شرکت هایی که دارن کار خردفروشی بهشون فرصت دادیم که در واقع اصلاح بکنن شرکت ها میتونن خارجی ها میتونن کار تولید بکنن کار سرمایه گذاری کار ترانزیت همه خدماتی دیگه اما مجوز فروشی صرفا به شرکت های در واقع خارجی داده نمیشه اینم اصلاحی که در راستای همون نکته که شما اشاره کردید تصمیم گرفته شده و انجام میشه آمار بودجه ای رو گفتید بگید بودجه منطقه آزاد در سال 5 که بنده مسئولیت پذیرفتم 120 میلیارد تومان بوده. در سال 97 500 حدود 500 میلیارد تومان 5670 میلیارد تومان محقق شده، دقیقش تو ذهنم نیست و سال 98 برجمون 790 میلیارد تومان هست. مجموعه کارهای عمرانی که از سال 90 تا 96 تا 95 در منطقه انجام شده، حدود 67 میلیارد تومان بوده. ما در سال 96 هیچ کار عمرانی رو شروع نکردیم ن نیمه 95 از نیمه تا شهریور 95 تا شهریور 96 بلکه مطالعات و تهیه ترها رو کامل کردیم و برنامه‌ریزی کردیم قراردادهای قانونی که در واقع مسئله داشتن رو جوونجور کردیم از نیمه دوم 96 شروع کردیم امروز که خدمت شما دارم صحبت میکنم 163 میلیارد تومان قرارداد عمرانی داریم و 130 میلیارد تومان هم پروژه در حال مناقصه یعنی تقریبا 300 میلیارد تومن پروژه عمرانی الان در حال حاضر داریم که 163 میلیارد تومنش قرارداد مناقصه شده و این در مقایسه با عملکرد صنایعت گذشته سازمان یک تحول بزرگی در حوزه پروژه های عمرانی است یه جدولی داریم آقای یوسفی اگر بیارید برید در حد جلو نه نمودار تره این چه قبلی این نمودار خیلی خوب است مقایسه ترهای تفصیلی آماده سازی و عراضی در منطقه رو از سال 75 تا 85 1700 هکتار تره تفصیلی در منطقه تهیه شده از 85 تا 95 0 از 95 تا 97 9600 هکتار ما تر تهیه کردیم میدونید کار کردن بدون تر یعنی خیانت یعنی جفا یعنی ظلم پروژه ای رو در یه جای زمین جانمایی کردن پروژه ساخته شده امروز که رفتیم تر تفصیلی رو پیاده بکنیم میبینیم دقیقاً خیابون از وسط اون پروژه رد میشه بدون تر تفصیلی در بعضی از پروژه ها در گذشته کار انجام شده که مشکلات رو ایجاد کرده ما در این دو سه سال یک کار ارزشمندی که حوزه عمرانی سازمان انجام داده این هست در بحث آماده سازی اراضی کل ترهای آماده سازی عراضیی که از سال 75 تا 85 انجام شده 1069 هکتاره 85 تا 95 صفر بوده 95 تا 97 ما 516 هکتار تر تهیه کردیم خود اجرای آماده سازی اراضی از 75 تا 85 869 هکتار زمین آماده سازی انجام شده که همین پیکره سنتی و در واقع بخشش مسکونی هست 85 تا 95 10 سال 68 هکتار از 96 و 97 فقط 200 هکتار طرح در واقع کار اجرای آمادستازی در پکره سنتی انجام شده همین الان در سال 97 همین الان در حال برگزاری مناقصه 300 هکتار یک 300 هکتار به یک 200 هکتار یعنی 500 هکتار دیگه علاوه بلین 200 هکتار برای امسال و سال آینده در دستور کار ما هست که خودش در واقع تحول مازورش اعتقادمون برای این هست که منابع مناوبش راجع به اینکه درامدهای منطقه از کجاست. عمده درآمد منطقه بر اساس تکلیف و در واقع قانون بودجه که شده سهمیه کالای تجاری هست میدونید همه مناطق سرجم 3 میلیارد دلار سهمیه کالای تجاری بهشون اختصاص داده میشه. در دولت این 3 میلیارد دلار بین 7 منطقه تقسیم میشه. بر اساس پروژه عمرانی که تعریف میکنن دبیرخونه شورای عالی این رو بین مناطق تقسیم میکنن سهم منطق منطقه آزاد چابهار سال گذشته 450 البته در این چند سال همش 450 میلیون دلار بوده یعنی یه عرفی هست که بر اساس فر... امسال ما البته به دنبال احصائس سهمون هستیم به دلیل اینکه سال گذشته یعنی چقدر تومن 450 میلیون دلار خب نه میگم که این الان 790 میلیارد تومنی که الان گردش سالانتون هست این فقط که از کالای مسافری نیست؟ عرص می خدمتتون بخش عمدهش کالای تجاری بشمید کالای مسافری اصلا کالای مسافری سهمش خیلی کمه کالایی که تو بازار داره عرض میشه کالای تجاری کالایی هست که میاد از طریق گمرک عوا 15 درصد از عوارضش سهم منطقه است ما بغش مال گمرک اسلامی ایران پرداخت میکنه و از هم در, در میره تو سرزمین. مصرف مصرف تو منطقه مصرف نمیشه. مصرف کشورمون تا از کانال منطقه آزاد رو میکنه که درآمدت با انتقاضات سهم بودین که بهش دادن محقق میشه. این برای ما پارسال 450 میلیون دلار بوده. یعنی 97. البته بیشتر ما بیشترش بر اساس این 15 درصد سهم کالای ترس 15 درصد از عوارض شما میگیریم حالا بعضی وقتا این کالا 15 درصدی نیست مثلا خود عوارض کالا مثلا یک کالایی 13 درصده ما 4 درصد از این رو گمرک احزامم باید بگیره 11 درصدش رو میتونیم بگیریم برای اینکه از کانال منطقه بیاد یه بخشش رو هم ما با تسهیلات به صاحب کالا بدیم که مسیر رو انتخاب بکنه متوسط بین معمولا 8 9 درصد تا یازده درصد ما از این 15 درصد درآمد کسب میکنیم این میشه بخش عمده بودجه ما که باید صرف کارهای عمرانی بشه ما در همه این سالا سهمیه ما 450 میلیون دلار بوده در سال پنج درآمد ما از این و پنجاه میلیون دلار به علاوه فروش زمین به علاوه عوارض پروانه به علاوه خدمات امبارداری. و سایر در واقع عبارزی که دریافت میکنیم که تعدادشون دیگه اونها خیلی ناچیزه تعداد خیلی زیاده ولی مثلا 100 میلیون 50 میلیون 200 میلیون ولی عمده اصلیمون سهم از اصلی درآمدمون که بالای 70 درصد هست کالای تجاری یعنی که از محل کالای تجاری میگیریم مابغش بخشش کالای همراه مسافر کالای همراه مسافر درصدش خیلی کمی 6 درصد بوده ما با تعجب این وضعیت گوندون شرایط اخیرا پیش اومده این یه خبر خوبه برای بازار آن بگیرید که ما 6 درصد و کردیم 5 درصد از 5 درصد نمیتونیم کمترش بکنیم چون کفش 5 درصده من تا قبلاً 6 درصد بوده با تعجم این شرایط که وجود داشته ما تصمر انا تصمیم شده 5 درصد یعنی برای کالا که برای فروش در منطقه میاد آوارزش 5 درصده که سهم این خب تبیتا در این دو سال کاهش پیدا کرده حتما در هم کم عددش ناانچینسهه. ما از این مجموعه کالای تجاری و این درآمده ها در سال که سهمیمون 450 میلیون دلار بوده در سال 97 در واقع 97 آره در سال 97 500 و فکر کنم 70 یا 60 میلیارد تومان درآمد داشتیم سرجم و در سال 98 پیش بینی کردیم مصوب کردیم در بودجهمون 790 میلیارد تومان از سال 97 از 450 میلیون دلار سهمیه که برای ما تعریف شده بوده ما 828 میلیون دلار جذب کردیم. یعنی کردیم؟ 450 تا خودمون رو کامل جذب کردیم، سهمیه سایر مناطق رو که نتونستن عمل بکنن هم خریدیم. یه بخشی از پول جذب کردیم، بخشی رو به اونا دادیم، بخشی رو خودمون. نتیجهش این شده که تحقق درآمد ما در سال گذشته از محل کالای تجاری، تحقق بودجه ما 124 درصد بوده یعنی چی اونا نتونسن جذب کنن شما جذب کردید بعد سهمیهشون دادید یعنی صاحب کالا رو نهدوش. به چاواها جذب کردید که چاواها خو کیفیت خوب خب بعد الان این باد یعنی بازم سهمیه مثلا کیشو برید یا مثلا سهمیه قیشون بدون با این طریق نتونسن مال سرقای بوده احصالم همینه همین هم الان ما برجشیشیم شیشیم ما میلیون دلار از ارس سهمیه گرفتیم 100 میلیون دلارم از اربند یعنی یه اونا خوب... نمیتونن کاله هاشون رو جز بکنن ما سهمی اونها رو با یه قیمت پایینتری تری جذب جز میکنیم سهم اونا رو بهشون میدیم یه چیزی هم برای ما درامه چرا نمیتونن جز کنن طرح نداشتن کیه نه به نظر کالاهای کجایه؟ یعنی کالاهایی که وارد سالمنی آسیب. دیگه. مسیر کالا، حمل کالا از کالاهایی به نمای کاری که کردیم که. آیا نیم یعنی برنج... هزینه ای دیگر امبارداری پایین میارید؟ مشاورت میزدید که اونا میارید. ما کالاهایی رو اینجا جذب کردیم که بهترین مسیر، ورزانترین مسیرشون چابهاره. ما رو برنج, سرمه کردیم. برنج سال کردیم. می بخش شانده برنج کشورات چابهار داره تامین میشه. تو این سال ما بنج رو هدف گذاری کردیم رفتیم همه وارد کنندهای برنج رو که از هند و پاکستان دارن میان اولین و نزدیکترین مسیرش رو ما طبیعتاً طبیعتا برای بیان چابهار برشون ارزانتر تا بنر اربند. طبیعتا چابهار برشون ارزانتر تا برن ارس. خب تلی که ما اینجا جذب میکنیم چون ما اینجا هم تو بحث انبارداری و خدمات در واقع همراه و نقلشون و اینها هم کمک کنیم تسهیلاتی رو در نظر گرفتیم. میان بعضی‌ها فکر می‌کنن ما شاید تخفیف بیشتری بهشون بدیم که بیان نه. این در حالی است که پارسال با همین 828 میلیارد میلیون دلاری که ما جذب کردیم درآمد به ازای هر دلار ما رتبه یک رو داشتیم بین مناطق یعنی بیشترین درآمد رو هم به ازای هر دلار کسب کردیم بیشترین سهم رو هم جذب کردیم اینا اون شاخصایی که شما نمیدونم بهش چی میگید سیاست بازرگانی میگید موفقیت مدیریت میگید نمیدونم چی بهش میگید چی اسم میذارید آی کی شاخص اسم بهتری حاصل این مجموعه ها پروژه های عمرانی است که به حال الان هفته گذشته در شورای مدیران ایران یک گزارشی رو حوزه عمرانی ارائه کردن از سال 92 تا 96 مجموع قراردادهای عمرانی ما 250 میلیارد تومن بوده در سال 97 به تنهایی 300 میلیارد تومن قرارداد عمرانی شده این یعنی چی یعنی که در یک رشد جهشدار در واقع با سرعتی داره در حوزه زیرساخت‌ها اتفاق می‌افته. این 300 میلیارد تومانی که در حال میکنم پروژه پروژه‌های عمرانی های 550 میلیارد تومن فرود گاست. تو بحث بخش عمده واردات به کشور چرا برنج تو چاوباه هنوز قیمتش بالاست؟ کالا تجاری. ببینید کالا تجاری تابع قیمت بازاره. ما نمیتونیم روی قیمت بازارش دست بزنیم. واردکننده برنجی که مثلا الان برنج محسن خ میاد وارد میکنه می تو کارخنش از اونجا توضیح میکنه. ما مسیر واردات کالا رو فقط داریم هم میکنیم. اینکه در کارلا میاد در چاوار معنیشی نیست که در کارلا در چااب ها رو باز میشه شود. ما دنبال این هستیم که بخشی از همین واحد های فراوری که برنج پاکستانی البته دارن یعنی فقط برنج پاکستانی کار میکنن یه بخشی از صهمیه اینها رو با یه سیاست گذاری بگیم در بازار منطقه ای توضیح بشن که بتونیم، قیمت مدیلت قیمت بازار را انجام بدیم مط های یه سری هماههگیهایی میخواد برای که ما بتونیم قیمت ها رو در خود چاوار برای کالاهای های تولید شده منطقه چابهار مدیریت بکنیم از جامعه بازاری کمک گرفتیم یه سری کارگروه های تخصوصی در های مختلف تشکیل شده دارن یه برنامه هایی میزنن که بتونن مدیریت بکنن فضای قیمت و عرضه کالا رو در منطقه که انشاالله در این هم برنامه داریم با کمک خود بازرگانای در واقع جامعه بازاریان هم برنامه های خورتی از این بودجتون چه قدرش های جاریتون هست، حق و زمو این و دستموز مدیران و عرشدتون هست؟ یعنی چه قدرش به این اختصاص داده میشه؟ فکر میکنم ما توی 790 میلیارد تومان هستد و 200 میلیارد تومانشا جاری مون باشه یا 200 میلیارد تو حکایتش حضور ذهن ندارم بذارید بپرسم بعد یه سوال دیگه بگم. مدیران ارشد و معاونینتون تو سامانه حقوق و دستمزد فیش حقوقی‌هاشون بارگذاری شده یعنی مثلا در دست است فریم از شهریور این کارو خواهم تمام, تمام مدیران و خودتون هم تأیید دادن بله من که خودم چهار ماه پیش اومده تو فزر بنت فاطمه دیدم خودتون دیدم من از من اومده از من همه چیزم شفاف ببین مدیرمون محسن مدیر حراستمون هرچی میگیم شفاف نمی‌کنن اومده انجام که خلاصه. می <تصفح> میگه حقوق‌ها رو فیش حقوقی‌تون رو بذارید در جریان باشه <تصفح> نه، در شهریور تمام مدیران، گزرا و مقامات دولتی تکلیف دارن فیشه حقوقیشون رو در ساز سامانه بذارن، دیده میشه خوشبختانه این اتفاق خوبیه که برخلاف تصور که مدیران منعت آزاد بالاترین حقوقا رو در کشور میگیرن بعد از این بارگزاری رو خواهید دید که اینطور نیستین. الباقی یک ظلمه. حالا همه فکر می هم من کم من. من در بین مدیران مناتقازات پایین ترین حقوق رو دارم البته شاید دلائل بسابه کار و حال موارد دیگه ای هم داشته باشه ولی ما برخلاف این که میگن حقوق های مناتقازات خیلی بالاست نه این بیرونش بقیه و خلاصه صبح داخلش دیگه این یه جورایی هست ولی اینا شفاف میشه ولی ما به شفافیت اعتقاد داریم اگر جایی هم به حال ایرادی تخلفی اشکالی در سیستم وجود داره حتما باید رسیدگی بشه ما از رسیدگی به در واقع برای یا از نقد برای اصلاح فرایندامون حتما استقبال میکنیم آقای کیخار رو من خیلی دوست دارم چون واقعا بعضی رو دوست دارم یعنی بعضی وقتا موضوعات روی وقتایی من تکام دیگه شیطنط های بس چیزی می پس باید صد خورده هزین های جارتون هست بقیهش هزین های عمرانی و پروژه هایی که اجرا می‌کنید. در حوزه مسال فرهنگی 10 در کل بودجه ما هم صرف هزینه های در واقع فرهنگی اجتماعی برای سرزمین اصلی میشه که بخش 11 شما در حوزه آموزش بهداشت و توانمندسازی منسازی هدف گذاری کردیم این ما در سال گذشته ه و سه تا کلاس درس رو تکمیل و ساخت هاد و سه کلاس درس رو در دستی کار قرار دادیم سیده تا مدرسه که دارن آماده میشن برای سال ۸ پیش بینی رو کردیم که در حوزه آموزش این مسیر رو ادامه بدیم در حوزه بهداشت. هم همینطور برنامه های مشترکی رو البته این دفعه با توفا کردیم با دانشگاه وروپزشک ایران شهر که به جای اینکه برای هزینه های درمان ما کمک بکنیم برای هزینه های پیشگیری. دو بهداشت بیشتر متمرکز بشیم تا قبل از اینکه مردم مریض بشن و بعد اگرچه که در سال گذشته برای خلید دستگاه جوغرافی هم ما هزینه پرداخت کردیم در دستور کار هست وزارت بهداشت داره کارش انجام میده. آیسیو هم که قبلا کار شده بود بیمارستان هم زمینش رایگان تخصیص پیدا کرده و اینها مجموعه کار است که در واقع انجام میشه، فکر نمیکن چیزی. راجب بیمه گذر موقت تو به منطقه آزاد نداره. باور کنید این گذر برای منطقه آزاد فقط هزینه داره پولایی که دارن میگیرن قوانین گمرکیه ماشین ماشینیه که نباید بره تو زمین اصلی مسئولیتش با گمرکه اون بیمه هم که دارن انجام میدن برای ارزش خود ماشین هست که اگه ماشین رفت برنگشت بتونن ازینه بیمهش بگیرن بلکه نه بیمه سرنشین یا بیمه شخص سالس نیست جنسی بمشفا میکنه ضمنا نو آبارزی هست و در واقع فرایندی هست که نیروی انتظامی به عنوان مسئول و ناظر اون کار و گمرک به عنوان متولی انجام میدن برای سازمان منطقه آزاد چابهار این گذره موقتیه ما اگر دنبال میکنیم که مثلا در ایدینا تردد آزاد بشه برای ما فقط هزینه داره هیچ درامدی برای ما نداره و اون فراینده هم که انجام میدیم الزامات قانونی است که این ماشین باید بره و برگرده عملا ما هم طوس نداریم مردم اذیت بشن ولی اگر ماشینی رفت و برنگشت پاس و خوش کیه؟ خوشکیه اینا ارزاماتی که گمرک و روانسانی دارن انجام میدن ما هم در بحثی روی موضوع نداریم دیگه فکر میکنم سال آخرین خبرم بله وزیر سمت ببینید امانی ها نگاهشون به چه و نگاه استراتژیک هست امان توسعه زیرساختی که در بنادر دوقم و سوهار داره انجام میده برای اینکه بتونه از این ظرفیت به خوبی استفاده کنه باید یه پیوندی در شمال دریای عمان برای رسیدن به بازارهای آسیای میانه روسیه و بازار 800 میلیونی پشتر چابهار داشته باشه بهترین نقطه‌ای که اونها رو میتونه به این شبکه بس بکنه چابهار است بنابراین اونها به دنبال یک رابطه استراتژیک بلند مدت با چابهارند و همیشه در درخواست ها و به حال مذاکراتی که با در کمیسیون های مشترک هر جای دیگه با عمانه ها ما داشتیم این موضوع مطرح شده و به دنبالش هستن اما در بحث ترانزیت عرض کردم نگاهشون نگاه استراتژیکه این رسیدن به افغانستان رسیدن به آسیای میانه رسیدن به روسیه همه اینها در نگاه عمان از طریق چابهار وجود داره به دلیل رابط باز دیرینه تاریخی که با ایران دارن پی شاید و دوستترین کشور در واقع هاشی خلیج فارس ما و دریا عمانمون عمان هست، این مناسبات هم به خوبی دنبال میشه ما تا در تحقق سرمایهگذاری و ها برنامههایی که داشتیم در اثر این تحولاتی که تو در منطقه اتفاق افتاده و این حال نوع تحریم هایی که این بار وجود داره یه مقداری متوقف شده یعنی عملا ما دو تا مجموعه کاری که باعمانی ها شروع کرده بودیم در حوزه، هم نقل و ترانزیت بود و در حوزه در واقع بخشیش صنایع پتروشیمی قرار بود کار رو انجام بدیم هر دو اینها فعلا متوقف هستند تا از طرف عمانی ها که اشاره ببینیم که کارشون رو شروع خواهند کرد با تغییر شرایط و به هر حال مناسبات و تکمیل زیرساخت‌های ما حتماً این مسیر مجدد تا آخر. من از جراسان 40 دقیقه گذشت. جامعه در ورزش حمایت ورزش. ببینید فوتبال ساحلی و کریکت دو تا ورزشی هستند که سازمان قبیلن داره حمایتشون میکنه مجموعه دهکده ورزشی پیل بند با تمرکز بر با های ساحلی، آبی و کریکت اولین و شاید مجهست در این ورزشگاهی هست در کشور که کریکت یا شاید اولین زمین استاندارد کریکت کشور هست خوشبختانه منابسه زمین کریکت انجام شده قراردادش امضا شده و پیمانکار در حال تحجیز کارگاه هست 67 میلیارد. تومن هم قرارداد این زمین هست که منقض شده خدماتی که سازمان برای جامعه ورزشی در این مجموعه داره انجام میشه میده از مجموعه خدماتی که به نظرم وزارت ورزش جوانان در چاواهار به عنوان متولی انجام داده در همین یک ورزشگاه پروژه ما در واقع بیشتر هست حمایت از تیم ها در دستور کار ما هست حتماً با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد اما زیرساخت های ورزشی رو ما در قالب یک مجموعه منسجم و کاملی شاید این اولین بهکده ورزشی باشه که با این کیفیت همه ورزش ها رو پوشش داده که الحمدلله عملیاتی هم شده و مناقصتش هم برگزار شده و انشالله عملیت الان که تحجیز کارگام همیه الان شروع شده دارن کار بکار اصلا یک سال من جواب میدرد تو بحث گفتم در فرسانه ای تو بحث معرفی گردشگری چا جو... من با شما موافق نیستم. شما الان اگر آمار ورودی منطقه رو بگیرید میبینید که ما گردشگری سال 95 تقریبا پنج تقریباً شست درصد نوروز 96 ببخشید 60 درصد گردشگرایی که به منطقه وارد شده بودن پلاک های استان بودن ماشینایی که کنترل فلات‌ها نمیکردند. ولی تو سال 90 و نوروز 98 فکر می‌کنم حدود 64.5 درصد غیر استانی بود. این عدد خوبیه به نظر من. درست می‌گم حدود 60 خورده اینا؟ بیشتر 64.5 درصد تو یکی از گزارشایی که به من رایه کردن بر اساس پلات و ماشینا غیر استانی بودن پرواز های ما در سال ۷ و ۶ بکنم چه درصد ۷ ۳ و۷ درصد پرواز های ما به چه ها پیدا کرده این یعنی که ما سافر بییهونی داریم و اینها در اساس معرفی که انجام شده اگر اتفاق این فتهبی ما زیر ساخت نداریم گردشگر اومده کدوم هتل با چه قیمتی کدوم تور کدوم آژانس کدوم تفرییکی اینا بحث همزمان باشه به من یه روزی گفتن آقا بیاید تبلیغات بکنیم که گردشگر بیاد گفتم بهترین تبلیغ برای ما امروز اینه که لطفاً به چابهار نیایید. ما که توی سرویس بهداشتی مشکل داریم، به این گردشگر باید اینجا چیکار کنه؟ مای ما که هتلمون یه است بعدم طرف میره اونجا میگه اتاق گرونه میگه میخوای به خانه میخای نخوا. چون رقیب نداره. چون رقیب نداره شما اجازه بدید دو تا هتل دیگه را بعد ببینید چه اتفاقی میفته. تور واسه تا تولیده قدیمی تو هم افتasemagales با چرا چون دو تا لیدر بیشتر شدن چون کسی نمیتونه این کارو بکنه. من میگم ما زنجیره گردشگری رو باید کامل ببینیم بعد تبلیغ کنیم. واقعا من اینو اعتقاد دارم. من میگم تبلیغ کردن امروزه که بیایید به چابهار ضد تبلیغ زیر ساخت چون زیر ساخت نداریم اومده طرف به دریا ببخشید کسی که هتل و ساختمان لوکس بخواد همین اتاقو من در تهرانم میتونم داشته باشم چابار چرا میخوام چون دریا رو میخوام چون تفریح آبی رو میخوام چند تا جتسکی داریم چند تا پاراسیل داریم چند تا برانادر چند تا دریایی ما داریم نداریم اینا وقت همزمان میشه حالا امسال نوروز که انشالله این مجموعه تکمیل میشه برای 6 ماه دوم دو یه برنامه تبلیغاتی جذب گردشگری هم داریم موته این باد آروم آروم بره فکر نکنید که ما مثلا کار سختی تبلیغ کردن نه ده تا بیلبورد گرفتن اصلا کار سختی نیست ولی بیلبورد بگیریم بگیری بگی بیاد اینجا بیاد طرف فش میده الان چون تبلیغ نمیکنیم هر کی بیاد تهش با خودش می بخون. من خودم مدم کسی به من نگفت فش نمیده ولی اگر ما بگیم بیای وقتی بیاد اینجا بهش بر بگذري یغ ن چرا به من گفتی بیا تو میگی چاوا بر تابلو بکش پایین پیش